الله الرحمن الرحیم و لله رب العالمین صل الله علی سیدنا رسول الله و آله طیبین و خافرین المعصومین و درس دائمت و علی عربي مجمعین اللهم رفقنا جمعی مشتغلین و الحمد و برحمت کیا و الحمد و و, و اخباری ها قرآنی رو مجموع ازده کردم برای حجیت خبر البته ارز کردم که در عباراتشون گاهی بحث حجیت مثله گاهی بحث ثبوت به عنوان ثبوت خبر بردم و این شواهد انصافاً مجموعه شواهد خوبیست برای این که یه توضیح بیشتری داده بشه ما این شواهد رو به لحاظ مجموعی تاریخی هم ایشاره بشو کنیم شاهد اولیشان یا قرینه اول کون راوی سردن ویساقت راوی ببینید دقت را کنید ما در باب خبر همچون که سابقا هم اشاره شد یه بحث ثبوت خبر و رابطه ای که ما با واقع پیدا می کنیم مثلا به که امام چه این مطلبی رو فرمونده یه بحث تاجه به مضمون خبره یه بحث تاجه به این که حالا این مضمون رو قبول بکنیم که بدیم شدیم ندیم مثلا در بابره در مباحث سخوچی از خبر از همون مبدعش محل بحث تا منتها یعنی از مبدعش حالت غابیست یا مثلیست که ما این خبر رو در اونجا می‌بینیم، از اونجا بحث شده تا منتها منتهها یعنی این که این مضمون و این فتوا ما قبول بکنیم و اگر خوب دقت بکنید در مجموعه کلمات علمای اهل سنت رشیعه اینا هر کدوم در یک مرحله از مبدا تا منتهی واقع شدن مثلا همین که راوی سره باشه جزء مبادی کاره اوله کاره و صادق اشاره کردم بعضی ها از قدیم محتمی بودن اصلا اگر رایی باشه قبر صحیب باشه مفید علم بعضی ها که این وقت ثبوت میکنه اصلا نه این حالا فقط علم باشه علم ولیکن مشهورتر بین این بود که این موجب خجیه موجب علم نیست و هر سر مزید زیادی به همین وساق اترابی احتفال شدن مرای خجیه یا برای علم به همین وساقت راوی اکتفا کردن در این ندیگه نمیخوان در کلمات مثل مرحومه اینجاز و وسائل و از بزرگان وساقت رو ایکی از قراره نقرار و الا در ناحیه به اصطلاح مواحث حجیق خبر سقری در اینجا وجود دارد یکی اینکه این خبر سقه مفید علم. یکی این که محیبه ای نیست اما حجت یکی این که حجت هبولی هم نیست لیکن یکی از قراره هست. این سه مبنا این مبنای سال و سایر روی مبنای این از مبدع منتها هم حالا در وساقت راوی هست صحت مسلح هست مطابقت با کتاب هست اینا خیلی بسر قرار میگیرن منطقه هم قبول مرمون بین اصحابه این راه نیست که علامه رفته مثلا از یه مرده مثلا مرومات اوی از مردهش رو چند اگر را بیسته رو باشه خجته ایشون مرده ای وسط گرفت ازدهی هم میگن مجموع این قرائم با جمع بشن وساقت و صحت و مثل رو کتاب رو نیم دارن و حضور و دلالت و همه که جمع شدن ما اون فتوه بین اصحاب تلقیه و قبول شده اون با خجته این رایه به لذاه ما این کسانی رو که در این مرحله می گیرن به اینها میگیم قائل به خود خبر نیستن این معنای که میم قائل به خود خبر نیستن مثل محبوم سید و قائل به خود خبر نیست به این معنا که از مجموعه شوالد عبور میکنه میرسه به مضمون و مضمونی که تلقیه به قبول شده این حکم با خود جزه شما هم در مواحظی که می خواهیی فیصل بکنید دقیقا باید این سیر مدع ها رو در بگیریم پس این مطلب اول مطلب دوم که در دومتون دو من فقط اشاره بکنم کلمه حدیث موجود هم فی کتاب کتاب اصول المجمع علیه حالا تعبیر تغییر مجمع علیه ها داره یا کتاب معروف مشهور این هم مثل همونه ازده معتقد که این ثابته عزه معتقده هست که این حجته عزه هم این رو قرینه میگونن طبعا اخباری ها خیدی تمایل به همین رئید دارن بیشتر روی کتاب حساب میکنن مبضع رو از کتاب بیشتر میگیرن تا روی راهی و اینشالله در بحث روایت در مقام خواهیم گفت دو سه روایت از احل بید در این مطلب. اعتماد اونها بیشتر این روایاته که در روی کتاب حساب بکنیم این شالا تعالی خواهد آمد و مهمترینشون در این روایات واضح ترد همه شون یک روایتیست منصوب بردر جواب الله علیه ابو جعفرستانی در کتاب کافی آمده از امام سآل میکنه که اده از علماء ما روایات دار کردن لیکن نشده این را اجازه حدیث بدن تحبیث بکنن و چون تغییر شدید بود کتاب رو در میکردن حالا ما اون سوال در رو نه که من از سوال حد صوبه ها فه اینها کتب و حقه یا کتب و حقه و همونه حد صوبه اینها کتب و حقه حالا این کتب و حقه یعنی ثابت این کسانی که میگن اگر مستر مشغور باشه ثابتی یا حقه یعنی حجت گوش شد؟ فه اینها کتب و حقه مرموم صاحب بیشتر و کلمه سبوت نظر داره که اگر این طور شد حدیث ثابت بلکه بیشتر اصحاب ما نظرشون رو حدیقه نه روی سبوت این کتاب مبنا رو دفعه سه من منها که حدیث موجوده کتاب الاربعه و نحوه من منالکتاب المتاب این تقریبا همون مثل دومه جواب پنجابه منها کن رو معقولن من کتاب عهد من اصحاب الاجماع این هم دو و سیست فقط خصوصیتی برده رو اصحاب الاجماع یعنی یک مجموعه است از کتاب و معلف کتاب از کردیم اصحاب الاجماع همشون کتاب ندارن و منها کن رو بعد به براتی من اصحاب الاجماع این هم ملحقه به یکه شون بعضی آمادن گفتن از این که شخص جزو اصحاب الاجماع باشه یا اصحاب اجماع ببخشید، شخص از شخصی از اصحاب اجماع از کسی نعبو بکنه این علامت حجیت و ساقته از این شماره پنج هم ملحق میشه به شماره یک مرحله شیشون منها من روایات بعض جمع از این و سفاقه ملعیمه این هم توضیحاتش بوده است که اگر امام کسی رو توصیح کرده اضافه بر اینجا خودش استغره است اگر از یک مجهولی هم نهاربه کنه اون هم اعتبار داره چون توصیق امام این هم مخلبش کده این هم تقییباً برمیگرده به اولی بیگمانه منها کونه هم موافقن لسنت معلومه ببخشید هم موافقن لکتاب شماره به هفت هشت هم با سنت معلومه موافقت با کتاب و سنت هم این در روایات محمد در روایات ما اینشالا چون این بحث باید در محل خودش بشه من فقط اشاره میکنم مجموعه یه روایاتی که موافق کتاب یا مخالف کتاب درش مطرح شده مجموعا دو مزمون دارند. یک مزمونش اینه که ما اصلا نگفتیم روایتی رو که مخالف کتابه ما نگفتیم اگر این باشه این برمیگرده به همون مثل شاهده ازوان که در صدور کار داره که صادق باشه مثل اینکه راوی ضعیف باشه مثل اونه یک تایپ دیگه اش که نه اینا حجت نیستن اگر روایتی بود مخالف کتاب بود یعنی ممکنه ما گفته باشیم مثلا اون جهادیه جهاد در جهاد باکن حجت ندارن پس یه بار بحث در این است که روایتی که مخالف با کتابه حالا مخالف موافق بعد عرض میکنن روایتی که مخالف یا مخالف کتابه حجت نیست یه نفه مضمون حدیث این است که روایت مخالفه کتاب سادر نشده انا لا نبول قولن خالف قولن اصلا ما نم نگفتیم این دوتا مضمون طرف میکنن که اینشالله تعالی در آینده از خواهم کرد. و من ها کونهو مکررن فی کتب متحدده این که یک حدیث مکرر باشه این یکی از قرائنه این استلاحا ما به شهرت میگیم و اینکه متکرر باشه در کتب متعدده اگر مصادر طولی نباشن مصادر ارضی باشن اصطلاحا به شهرت روایی میگیم مراد از طولی یعنی تعداد طولی مثلا یه حدیث در کتاب کافی آمده بعد از کافی شیخ طوسی از کافی نعم میکنه بعد از ایشون فرض کنه علامه از کافی نعم میکنه محکم نعم میکنه بهارم از کافی نعم میکنه رسائلم نعم میکنه تمام در حقیقت یک مصدر نه اصطلاح مصادر تولی مسادر ارزی نه در کاپی آمده در فقی آمده در سال آمده در چند تا کتاب متعدد آمده استلاحا اینها رو به اصطلاح مسادر ارزی بگید این هم راجع به این قسمت این قسمت این قسمتی ای که ایشون الان اسم شهرت الان مثل ایشون ناکه کتاب متعدده ما اسمش شهرت گذاشتیم. این بیشتر در روایات ما این در یک روایت ما با عنوان مرجح ذکر شده در روات و عمر بن این به عنوان مرجه ذکر شده لکن خب میشه شهرت رو هم به یک معنای جزو مقدمات حجیت مطرح کرد که اینشالله شاء بعد مطرح می‌کنیم این در آینده انشالله. و من ها کون هو موافقاً یعنی شواهد عینی شواهد خارجی مطابقت با او بکنه مثلا ثقل شواهد موجودی که ما داریم بدونیم که پس که مثلا منباب مثال ما قطع داشته باشیم منباب مثال در زمان فیغمبر اکرم ما شطرنج رو در دنیای عرب نداشتیم اصولا عرض کردیم مکه مدینه که اهل سفر نبوده چون خودش زراعت مختصری داشت و شاه داشتن و آب داشتن داشتند و مکه برای درامتشون بیشتر به سفر میرفتند احالی مکه در تابستان ها به شام میرفتند که هایش به گوزمستان ها به خاطر گرماش به یمن میرفتند میوره نداده تا سيف اشاره به همینه اما از بگیم نه اهل مکه نه اهل مدینه رفت و آمدی با ایران اون زمان نداشتن حتی اگر مجوز هم در قرآن اسمش آمده بیشتر به خاطر اینکه در یمن ایده از ایران چون یمن تابع ایران بود ایده ای از مسئولین سیاسی و احسا که از ایران فرستاده شون چون اینا رسال بودن بیشتر در اونجا با مجوز آشنا شدن و اصولا این حکمی که سنو به هم سنت اهل کتاب با مجوس هم معامله اهل کتاب بکنی این بعد از به اصطلاح فرض که نفی تثبیت شد بعد از بحرین بعد از اینکه بحرین اسلام آورد پیغمبر هم بهستون علامر حزنی رو فرستادن بعد خالد بن ولید فرستادن این سنت در اونجا گفته شد چون در بحرین مجوس بود علاوه بر رابطه دنیای اسلام با ایران نه بود، رابطه ای نداشت. نه در مکه رابطه داشتن و نه در مدینه. نگاه کنید مثلا مسافری میگه مراختم مثلا در بلاد ایران این تور دیدن از این جوری به الا اونطور رابطه رسمی نبود. و لذا آشنا نبودن با فرهنگ ایرانی. شطرنج مثلا میگن اصلش هندی یکی از وزرای یکی از پادشاهای هند جعل کرد و ایران آمد معروف اینه که شطرنج در زمان دومی که ایران تأسس شد در همین پای تخت ایران اونجا وارد دنیای اسلام شد. این آشناییشون اونجا شد. این کتب تاریخیشون حتی مثلا از عمر میشن که در ابتدای نوشطرنج حرام برد بهش گفته این برای جنگ خوبه. نقشه جنگی بود، خب پس حلاله. این در حقیقت روایات که ما داریم برمیگرده به زمان عمر و داره که امیرالمؤمنین این سنی‌ها از زمین رو نفی کردن. ما هاد التماسی بذتی انتم لها آتفون. اون تحویر رو که برای بطفرستان یه توضیحات داره که این صورت جایی دیگه خب ما الان در روایات خود روایات مفرده داریم از سکونی هم رسول الله در با رو شهرند خب خیلی این خب خیلی آدم پرجم می خود اهل سندت نداره خب طبیعتم هم اینطوره خب نبوده شفایی نبوده اصلا مفرح نبوده ما الان روایات مفرده داریم سکونی عن عن عن عن قال قال رسول الله. ببینان تعجبشون که اینی که موافقه با ضروریات باشه موافقه با تاریخ باشه موافقه با حوادث خارجی باشه این یه مذهبی نیست که حالا فقط ایشون گفته باشه من همین چندی پیش عرض کردم یه روایه داره در صحیح بخاری هم اساسا دفعه یه شخصی به نام مسروق این اسمش بسروق نیست این بچه بوده یمنی بوده دزدیه میشه بعد مادرش پلاشش من پولمو دادش برمیه چون دزدیه من مسروق اندوزیده شده مسعود ابن الاجدع یمنی خب این به مدینه اومده بعدم با عایشه خیلی مرید عایشه بوده خیلی بهش تبرئه شده عایشه هم حساب میشه مسعود هم در بخاری اثر آل سلسله همیشون داره جزو تابعینه یه حدیثی در بخاری داریم در باب مسعود ابن ام مادر عایشه در باب آیه اف تو بخاری هم هستی یادتان خود اهل سنت بزرگانشون هم جهاشهزن که این دوران بخاری اشتباهه چون مسروق وقتی اومد به مدینه که عمر مرده بود نمیشه که حدیث بود. فقط از عمر شما در بیاد اصلا ندارن اصلا ما داریم گاهی میره توی احادیث و لذا ایده اهل سنت نمیشه بعد واقع تاریخی نمازون چون بخاری ندر کرده و بعدو بخاری قبول یعنی گیر گیر چیکار بکنه یه واقعیت تاریخی دارن به اون اینکه مروغ مثلا با عمر ملاقات نکرده ورود او به مدینه بعد از موت عمر هست تو بخاری یکی از مغلقات بخاری ها ما گیر چیکارش بکنیم نظام عده‌ای هستن که اینو بگیم تعبدی خبر واحد رو همینجوری چه شوند ولی قبول بکنید با واقعیت ها هم نمی سازه یعنی قبول درن که این با واقعیت با انسجام نداره دقیقاً این مطلبی که ایشون نشکون هم موافقا به ضروریات هم در درستیه یعنی اینکه اگه همیشه تعبدی باشه مراد از ضروریات هم با وقایع خارجی با حقایق خارجی در همین سعیه بخاری حدیث بسیار مفصلیه که تحت هم کرده شد مثلا یک تخونیه بخاری که ما ذریه سند سروصفیه جوون سروصفیه شه کلا دو قسمت ورده در کیفیت بد رحم که پیدا در هرارتن در خانه خدیجه خب از جابر بخاری هم از آیش نقل شده که من در سال 13 مغرب هفت ساله بودم پس ایشون این حادثه ای رو که آیش نام رو به بدع به در حیره 6 سال بعد از او به دنیا اومد بدع به کتاب کیف خانه بابش کیف خانه بد الله تعجبم کردم من مراجعه به چند تعشروه بخاری ندیدم تعلیق بزنم که آخه هم چیزی طبق نوشتار خودتون معقول نیست عایشه میگه من سال ششم هجرت دنیا آمده به اصف مذرده سال ششم مبعث بزنگی در سال سیز لک پیغمبر هجرت کنه آجونگه هفت سالم بود پس این باید سال ششم به دنیا آمده باشه چطور مال مبعث و غاره راو و حتی به خدیجه یکی نهر می کنه چیز سال قبل از سبب باشه این غرض یک مشکلاتی است این خیال ما مثلا حالا من حدیث سکونی های اسم بردم خیال تو حدیث سکونی موجوده در صحیح ترین منابع حدیثی که الان پیش انده سنده این مشکل موجوده که خودش هم گیر کردن که ما این چکاری بکنیم چی جور مثلا چی مطلبی رو ما قبول بکنیم بله و منها عدم و وجود معارضه این که یک معارض نداشته باشه این خودشی که از علامات به اصطلاح قرائم قبوله این مطلب اجمالا درسته اما چون یک تفاصیلی داره شاید من انشالله تو بحث دوم که به مناسباتی وارد بحث سکونی شدیم سکنی شدیم من یه توضیحات اونجا هستم گه اینجا بحث بشیم خیلی طولانیه چون وجود معارض رو خودش رو یکی از نکارتی میدونستن که خبر معارض داشته باشه یا معارض نداشته باشه من این شاء الله تعالی خواهم کرد. مثلا این بحث موافره کتاب و موافره سنت و بعضی هاشون از محسوسا بعد از علامه به بعد نهیم که هم کل واحد از زمان علامه که مبارز ترجیم هم از در فقه شیعه این نکات تاریخی همیشه در ذهنتون به عنوان کلی بمونه در اصول شیعه مبارز ترجیم بین خبر متعارضه بعد از علامه مفرح شده این حدود هفتان سال این مسئله اصلا نبوده تا غرم هشتون از در بدایی عمر مسئله که نسبتا معتنابهی که امسال یونوس داشتن مسئله که اگر دو حدیث هم بود یک ترک تارض یه یک مسلکی بود که شاید کلی معتقد باشه این را خوب مسالک اصحاب ماست همیشه مثل جدول با تو ذهنتون حس بشید مسلک تاخیره ظاهرش اینطوره لیسات این تو و ارث تو بحث خبر واحدم نمیرسیم ولی تو بحث تاارو کاره واقعاشون قاره تاخیریه مسلک سوم که احتمالاً ریشه های این مسلک شاد به هم برگرده چون از خواب ما بحث نکردن این بحث ما برای اولین بار مطرح میکنیم یعنی شواهدی ما پیدای کنیم که مسلک این مسلک معلوم نیست مال شیخ باشه احتمالا قبل از ایشان مطرح شده اصطلاحاً مسلک جمعه جمع جمعه مهموان کرد اولامنتر که این شیخ کتاب استفسار و تحضیب رو بر همین اساس تدبین کرده، میدن مسلکشون البته تحضیب هدفشون شرح مغنعه مفید بوده به بالمناسب حدیث متعارضه میارن یک جا اما استفسار اصلا تالیف شده برای حدیث متعارض سه استفسار تالیف شده اینه استفسار شرح چیزی نیست ایشون از اول کتاب تا آخر فقه رو در هر بابی روایات و لذا استفسار کوچیک تر تنظیم هست چون جایی که روایت متعارضه نمیوادن استفسار فقط و فقط به عنوان جمع بین روایات متعارضت و ارز کردیم این صاحب هم کار خوبیه استفسار این کار رو الان در زمان ما خیلی میتونیم اوسع انجام بدیم گیشون چهار جل نمشن با تحقیقاتی ممکن به چه جلن مرس به ما بیمیم تو حقائد و تو اخلاق و تو تاریخ و تو تاریخ انبیاء و تو تاریخ همه تا آرز رو توسعه بدیم در تفسیر و در تمامی این موارد که ما روایت متعارض داریم داره جمع بکنیم استفسار در خصوص فیلم مسلک جمع و مرمون و شیعه در استفسار داره و تا زمانی هم توی شیعه چا افتاده بود در بینید عبارت دارن از جمع و مهمان کن اولا تر این روایت نیستی مندرابردی عبارتی خود همچونی این مسلک است که دنبال مسلک جمع بودن از جمع و مهمان کن آخر شواهدی که ما داریم این که شواهد خیلی خوب که این معلوم میشه که واقعا یک ریشه تاریخی داره یک کتاب 29 ال ایزاب چند بار اسمش رو بردن مال قاضی نعما تازگی چاپ شده تا حالا چاپ نشده بود این نسخه منفرد هم داره در آلمانی این نسخه رو چاپش کردن انصافا این کتاب هم مثل استفساره یعنی شعر که ده قاضی نعما بین روایات متعارض جمع بونه مسئله هم جمع این قبل از شده. چیزی در حوض بین وفات قاضی نعمان و وفات شیخ سال فاصله شهر شیخ سال ایشون سال سال بین وفات این دارم البته قاضی نعمان از روزوگان اسماعیلی و قاضل غزات اسماعیلی ها در مثل علایه این چند تا مثلک شو ستا یکی ترخ شد یکی تخییر شد تخیر و بعدها تخییر رو بعد این شیخ صاحب سابقه پیام غالب تغییر. یکی تغییر شدی که هم جعل شد مثل که شیطانی از زمان علامه به بعد مثل ترجیح ترجیه هم اضافه شد. مثل که الان غالبا دوم هم الان هست. اصلا ادیگر علمای ما عنوان بعضی میگن تعارض تازه ادله، بعضی میگن تعارض و ترجیح. اصلا عنوان ما رو ترجیح دادند. تعارض و ترجیح. یعنی اینقدر این مسلک ترجیح جا افتاده هست. که الان اصلا تو ذهن آدم نگاه میکنی کتابای اصولی خودمون رو که الان نوشتن از روی تعارض کنا احساس میکنه که مصالح جز ترجیج جزء مصالحات اساسا ترجیح جزء مسالک رایج اهل سنته سنیان دارن مسلک رایجشون ترجیجه اهل سنت دارن و ترجیحشون هم دیگه از ترجیح ما مرجعاتی که ذکر رحل سنن بالای هشتا تا مرجعه ذکر کردم. چند بار از کردن مرجعات اصحاب ما مثلا مثل, مثل آرگوی چهار پنج تا سه تا اونی که در روایت آمده قررزم اینی که چار تا پنج تا و لزام بحث کردند که ما از مرجعات منصوصه تعدی بکنیم به پنج تا و چار تا پنج تا احتفاده کنیم باب تفجیح رو بیشتر توصیح بدیم تقدر فرمودیم این مسئله معارض یکی از مسائل بسیار مهمه البته ای بودن مثل یونوس بن عبدالرحمن اینا معتلب در وجود معارز وعدم وجود معارز تأثیری نداره رو باید باید موافقی کتاب و سنت باشه. یا مثل مرحوم سید مرتضا که به خبر قائل نبودن چه معارز بود؟ به هر حال این نبودن معارز یکی از نکات قوت بود اما این نمیشه بگیم مثلا یکی از عوامی بود عوامل اساسی بود این به قرینه اشبه و ها عدم و احتمال به تقییه مسئله تغییرشون در روایات نصفاً زیاده از کردیم بعضی از عامل اخباری ها افراد کردن اصلاً عامل اساسی کلیه تا آرز و تقییه میزنن ماها عوامل مترتبی آمزه کردن مرهون و صاحب هداره یه اصل در تمام تا آرزها تقییه این دیگه خلاصش کرده <تصفيق> به حتی گاهی اوقات دو تا روایت معارض داریم که هر دو روایت مضمونش در کلمات اهل سنت نیست. باز از اهل سنت باشه. مثلا ما دو تا روایت در باب روزه داریم. یه روایت میگه اگر شب نیت سفر کرده بود افطار بکنه، دو روزه بگیره. فهمون میکنه قبل از ظهر باعثه. یه تایف هم داریم که اگر سفر قبل از ظهر بود افطار بکنه، بعد از ظهر روزه بگیره. این دو تایپ معارضه هیچ کدوم از این دو فتوار هم سنیا ندارن نه این یکی نه اون یکی این دو, دو مطلب رو هیچ کدومش رو سنیا ندارن یقیقاست بکنید شون سونیا از دارم و همه میگرد تحقیقه در اشم مخواد بوزه بگیدیم خواد اصلا رو پس سنیا هم پس ما الان تا هم شاهد بیارن چون همیشه باید با شاهد باشه تا آرز داریم که در روایات ما تا واقع شده. دو طرفش هم قول خود ما سونیا سنیا ندارن نه, نه این طرف دارن نه اون طرف من ازال سابهدارش میگه اینجا تقییه ما خواستم توضیح کلاه سابهد سابهدار یه حتی هم جام تقییه هست اون نقطه اصلی تقییه است حالا این چیجور تقییه استم توضیح چون لرزشون گفتیم ناقص نرد نکنم ایشون میگه ولو ام ایجاد اختلاف بین شیعه بکنم باز مراد تقییه از اهل سنت در اینجا امام ایجاد اختلاف کرده میشه دو تا روایت هم, هم همین دادن دو تا روایت برای فرار از عامه هایی که جان شیعه ریسو کنه یه روایت داره عن خالص یعنی در باب نماز در باب وقت نماز ظهر عن خالص هم ایشون به اون تمسف می کنه در تمام ابواب خلاصش مرحوم آقای صاحب حظائر اینقدر افراد داره که تمام ابواب تعارض رو برمی‌گردون به تقیه تو خلاصه <تصحنت> یک کلمه اونم تقییه البته این مطلب درست نیست ما بسیاری از ما رو تقییه به اختلاف نسخ و روایات و جهات متعدد همیشه از کلمه هشتا در سر تقییه برگردیم به قبل از امام به تقییه نمیدیست علا این یک مطلب یه مطلب اینه که بحث تقییه اگر آمد این جزء مرجحاته یا جزء مقدوماته ظاهر عبارات اصحاب ما در وحس طریقه جزو مرجحاته یعنی ترجیح میدیم میگه روایتی و رو بر روایت دیگه در تعارض به طریقه لیکن ظاهر بعضی از روایات جزو مقردماتی بسه ما هم بگه اشتباه نشه صاحب که پایم جزو مقردماتی هرش برای همین قالب تخییره میگه اون روایاتی که میگه اگر حمله کش موافق با سنیا سن رو در تقییه بکنی این اصلا مفادش اینه که اون طایفه ها حجت نیست نه اینکه هر دو حجت ترجیح بدین خیلی خب معنی ترجیح اینه که هم این طایفه ها حجت هست هم اون طایفه ها حجت هست این رو چون مخالف آمد ترجیح بدین اما اینا معتقدن نه خوب دقت این خیلی ذریفه مثلا شاید نظر مرحوم صاحب سلام به همین باشه چون دیدم اباظیشون یه نظر دیگه هست که نه ما کار ویجر نداریم بلکه بالاتر حتی اگر معارض نبود اگر شواهد کلامی خود به کلام اهل سنت اینطوری است چون ما در روایات تبیین یه روایت داریم که از همه روایات اشد بیایی معناست معتبر هست مال ابی عبدالله بن قال قال ابو عبد الله علیه السلام ما سمعته منی یوش به حقابولن ناس فیهه قریه ما سمعه تمنیم یوش به حقابولن ناس خیلی هرچیب این بحثی به تا آرز نداره اصلا لذا این احبال لذا تا کفایه تمایلش به اینه که اگر دو تاره وارد داشتیم یکیش موافق با سنیا بود نبود یکیش حجت یکیش حجت نیست یکیش حجت نه اینکه که هر دو حجتن ترجیح بده به مخالفت آمن نه صحبت ترجیح نیست، صحبت حجت ولی حجته صحبت ترجیح بله خوب دقت بکنه این یک مسئله است که انشالله جا توی باب تا آرازه خیلی مسئله مهمی هم است از اینکه از نکات بسیار مهم نیست مخصوصا تطویق خارجیش یک مشکل کلیشه یک مشکلیه، یک تحقیق خارجی شه. الان ما مثلا در بعضی جا مثلا میگه روایت رو مطابق با قول شافعیه، شافی اصلا بعد از زمان ما صادق هم آمده. تو روایت امام صادق شو یک در کلمات اصحاب ما مخصوصا اصحاب متأخر ما یک مواردی به بر تقیه شده که انسان وقتی به کتب تاریخ، یعنی به کتب فقر اهل سنت و دیگران خیلی تعجب می‌کنه، تو ذهنا این مسئله قرارمون به بر حال روشن شد، پس بنابر این این عدم احتمال بر طبیعه یک جزو مقدمات حجیت دو جزو مرجحات سه جزء قرائنه. سال و سال جزو قرائن گرفته مبانی رو از میکنم منها تعلقه به الاستحباب من از ثبوت المشروعی این کلمه ثبوت المشروعی نمیدونم چیه که اگر حدیث در باب مستحبات بود اون رو ما قبول میکنیم ایشون میگه حدیث من بلغهو شیء من الصواب همینی که ما الان اسمش رو گوشیم تسامح در ادله سنن سنن در اینجا مراد مستحباته چون سنن گاه گاهی به معنای ما جعل رسول الله ما شرع رسول الله فی قبال ما شرعه الله سنن بو اون سنن توش واجب و مستحب هر دو هست تو اون سنن سنن یعنی اونی که پیغمبر مثلا نماز زورد دو داره که از اون تیغمبر 3 و 4 هم اضافه فرمیدن این رکعت سوم و چهارم هم یعنی سنن اسطلاح و نبی مراد اینه مثلا خداوند فرمونه شرابی که از انگوره حرام پیغمبر نه هر شرابی هر مایهی که مسکل باشه حرامه این سننان نبیه این سنت نبی الزامیه یعنی یجب الاشتنابه ان کل مسکل این به سنت رسول الله تکرار ورده این اصطلاح سننگای به این معناست این توش واجبه هم داره گاهی سنن به معنای مستحبه اینجا مرادشون مستحبه من هم مساولات خیلی زیاد نره چون این مطلب مشهور من فرض که دو کتاب‌های آخر بحث هم هست این چون احادیثی داریم به نام منبره من, من توضیح‌هاش رو است کردم از سال‌های 150 140 شروع شد بحث‌های رجالی خب می فهمم؟ این سره یا نه؟ به در کتب احرس سندن درشن اول منفق تشهن رجال به عراق شعبه شعبه 161 رفاتشه یعنی زمان مونسد جلبه یعنی از سالهای 140-150 ها من چند بار رکم بحثای رجالی شروع شد از اولین بحث رجالی هم به بود بعد بحث طبقات و مبقا نهی بردها اضافه شد اولین بحث این بود از کلانی از کلانی امرسولان این ها سقه هست یا نیست این اولی بحث در رجال در همون زمان ها چیزی در بوده 167 ادهی آمدن خوب در قصه ما هم تاریخ مسئله رو بگن ادهی آمدن به دنبال این مطلب که با این بحثایی که ما میکنیم فلانی سقه هست یا نه این رو بگیریم برای واجبات برای مستحبات لازم نیست وقت در اون زمانی اصطلاحی بود ما شون می مستحبا اون وقت اصطلاحا گفتن فضائل مرادشون از فضائل فضائل الاعماله نه فضائل الاشخاص آن در کتاب بخاری بابی داره ما فضائل مسلم داره و همشون دارن باب الفضائل فضائل الصحابه فضائل فلان که این فضائل الاشخاصه خوب دقت بکنید ما یک فضائل اعمال هم داریم این فضائل الاعمال هم مستحباست از بدالله مبارک نرم شده اج حدیث فل فرائل شدت نام و فلفضزائل تصاحل نام ببین کلمه فضاائل یعنی متبات اصل قاع تتصام در ودلسانن نیمه های دوم قرن دومه. این تاریخش به می و تعبیر هم شبیه همین تعبیر ماسامیه تتصام اون هم بودن تساهل نام عبدالربورک تقی معروف اهل خراسانه اذا جاء الحديث فل فرا تزا فل فرائض حالا فرائض یه چیز دیاره من الان فراموش کردم. نگاه کن کتاب چیز چیز چیزی داره درای کفای ختیب و دیگران در. اذا جاء الحديث بنذارم فرائض باشه چون یکه حافظه من خراب میشه. و اذا جاء الفلسفه اون درست تو ذهنم اون دقی تو ذهنم. و اذا جاء الفضائل تساهل ما. میگشه سلامت لا. یعنی این شدت رو شما توی حدیث در فضائل ای فضائل العمال یعنی مستحبات این تشدید رو نگیریم قبلی بکنیم از اونجا مباحث تسامح در ادله سنن در آمار و این وقتی بعدها این اصلش اینه اصل کلمه این بود روشن شد پس زمینه ها روشن شد چی پیدا شد و اصل کلمه چی بود بعدها ایده از علمای اهل سنت مثل حاجی عبد الله انصاری و دیگران و ایده ای هی آمدن قید غیض اضافه کردن مثلا بعضی این قید اضافه کردن که باید اصل اون عمل مشروع باشه اگر اصل عمل شک در مشروعیتش باشه حدیث دیگه شامل اون نمیشه تصامح در اذهل اسلام شامل اون نمیشه مرحوم مرحوم مرحوم سال رسائل معصوبوت المشروعیه احتمال داره نمیدونم حالا ایشون چیکار کردند و عرض کردیم این روا... ما بی این تعبیر نداریم خوب دقت بکنیم ما بی این تعبیر روایت ما در میان کتب ما نیست پس تعبیر این تصاحل در روایات پضایب تصاحل در روایات پضایب این تعبیر موشن شد ما این تعبیر رو از عینمه خودمون نداریم اشتباه نشد حتی این تعبیر رو از علم بعدی هم نداریم خوب دقیق میکنیم؟ ما از امام صادق داریم من بلغه هون شیعون من از سواب انه نبیه هون سواب فعمل ازالکه عمل ابتقاء ازالکه سواب کان له ذاله حالا دوتا حدیث هم هزوش معتبره یکی زیرش اینطوریه و اینلم یکنه لعمرو کما بلغه یکی زیرش اینه یکی زیلش اینه و این کامن نبیل هم یک دو تا زیل داره این ایک اشتباهی شده شد شده از بزرگان در این اشتباه واقعی شده من خیر اجمالی من این تفصیلش اینه تو بحث من بله و قاعده تسامو که چرا از خواب ما ما چین حدیثی رو داریم دقت نکنیم اما این تعبیر تساهل در روایات فضائل ما نداریم اون تعبیر اهل سنت رو ن این تعبیری هم که عرض کردم منوره توی کتاب محاسن برقی آمده بعدها توی کافی آمده تو اصول کافی دقیق تو فقه هم نیامده تو اصول کافی آمده در کتاب سابل اعمال صدوق هم تو اولش آمده شیخ توسی هم کلن این رو نیابرده ما ارز تا که ما تحقیق کردیم شیخ طوسی روایت کافی رو زیاد داره شاید 80 درصده که داره ترتیبش کافی باشه اما اینم خیلی عجیبه بخش اصول کافی رو ندیده تو اصول کافی هم مثلا حدیث رد رو گفته عن شیخ طوسی رو نمیبره خیلی عجیبه اینکه از عجایب حدیث که گرای بعضیه شیخ طوسی نمیبره صدوق تو فقیر داره این رو مرسل داره انگار شیخ طوسی خیلی به صدوق اعتنای نداره صدوق زیاد داره کافی اینه تو اصوله تو باب ایمان و کفر هنده حدیث راپ رو تو آباب ایمان و کفر آورده چیز دوی اصول شیخ تویش هم اصلا نیه ورد حدیث راپ رو کل نیه ورد حدیث راپ رو آورده به معنی اهل سنت در کتاب خلاف مسلم چون کتاب اهل سنت سه تاست از راه حدیث اهل سنت اونایی که اهل سنت قبول دارن چون ادیشان قبول ندارن حدیث راپ می‌سپوکاری اصلا بخاری حدیث راپ کل نیه ورد بخاری مسلم اینا کل حدیث راپ نیه ورد چون قبول نشده. اینشالا باید توجیه داشته عرض میکنم نگه بعد می پس بنابراین این حدیث منبلغ رو هم شیخ توسی نیاورده دیگه بین اصحاب ما جا نداشت تا زمان مثل شهید اول و شهید سانی یعنی قرن هشتم به بعد اون اصطلاح اهل سنت تساهل در ادله فضائه شد تسامح در ادله سنت پس این عبارت هم تاریخش براتون روشن شد تسامه در ادله سنت این تعبیر رو علمای شیعه ما از قرن 8 به بعد آوردهن. مثلا قرنام کلا ندارن. عنوانی که هست منبلغه، اون بحث هسته هست از منبلغه ما چی میفهمیم همین تسامه در ادله سنت میفهمیم یا چیز دیگه میفهمیم مثلا اگه کوی می‌فهمم ما ازش انقیاد میفهمیم یعنی اگر انسان شینی که پیغمبر ما چیزی فرمودن انجام بده و نه پیغمبر نگفته باشه. این حسن انقیاد این در سوام نذاره؟ سواب بهش میشه از جهت این ریاض. نه از جهت این که این عمل مستحب میشه اثبات استحباب نمیتونیم با حدیث زعیب بکنیم استحباب مثل ووتیوب روشت و فرمت باید حدیثش سعیدی باشه با حدیث زعیب اثبات استحباب و کراحت نمیتونیم بکنیم باید اونم سعیدی باشه دقیق فرموزید هر برگید ساهر و در اینجا و اینکه اخباری مسلک دقت نکردن که این حدیث صادقه چی جوریه ایشون در اینجا قبول کردن میگن چند تا شاهد برایش بعدش پس این هم مبني بر قبول تساوق در عدله شون با همین اجمالی که اجمال من امروز گفتم براتون واضح شد صلی الله محمد نواله.